برخوردی با پلیس با کیسه ی پر از مهره های شطرنجش به خیابان شیکسپیر قدم گذاشت. واقعا نمیدانست باید چه کار کند. تمام بدنش مورمور میشد، اما نه مورموری که سوزن سوزنی باشد، بیشتر شبیه همان حس عجیب برق گرفتگی بود که وقتی به انتهای زندگی خاصی نزدیک میشد، احساسش میکرد. سعی کرد احساس عجیب بدنش را نادیده بگیرد. و در جهت کلی پارکینگ به راه افتاد. از کنار حیات آپارتمان سابقش در ساختمان 83 بلوار بنکرافت گذشت. مردی که نرا تا به حال ندیده بودش، سطل بازیافتی را از آپارتمان بیرون میاورده. یاد یادخانه زیبای کلونی‌اش در کمبریج افتاد و بی اختیار آن را با آپارتمان نقلیش در این خیابان پر از آشغال مقایسه کرد. احساس مرمورش کمی از بین رفت. از کنار آقای بنرژی گذشت. یا در واقع خانه‌ای که در زندگی دیگری متعلق به آقای بنرژی بود. متوجه شد تنها خانه بلوار است که تبدیل به آپارتمان های اجاره نشده. البته ظاهرش بسیار تغییر کرده بود. حیات جلویی کوچک خانه پر از علف هرز بود و هیچ نشانی از گلهای کلماتیس و گلهای هنای گلدانی دیده نمی که نورا تابستان سال گذشته موقع عمل لگن آقای بنرژی برایش خریده بود. چند له لحشده نوشیدنی در پیاده رو افتاده بود. نورا زنی را دید که پوست برونزه داشت و موهای بورش را گوجهی بسته بود. و با دو بچه یک کچک سوار کالسکهی دو نفره در پیاده رو به سمتش می آمد. خسته به نظر می رسید. روزی که نورا تصمیم گرفت بمیرد، همین زن در روزنام فروشی با او حرف زد. همان زنی که شاد و بیخیال به نظر می رسید. گریان. متوجه نورا نشده بود. چون یکی از بچه هایش بلند بلند گریه می کرد و کریان سعی داشت با تکان دادن دایناسور پلاستیکی جلوی او آرامش کند من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم بجونه هم ولی خب، بالاخره موفق شدیم دوتا کچولیگ شیطون داریم اما می میدونی چی میگم احساس می کامل شدم می تونم نشونت نشونت بدم بعد کریان سرش را بالا آورد و نورا را دید نه نورایی. آره، سلام نورا، سلام کریان اسمم و یادته، وای، توی مدرسه حسابی ازت خوشم میومد به نظر میومد همه چیز تموم باشی تونستی توی اولمپیک شرکت کنی؟ راستش آره، یه جورایی، دست کم یه زمانی البته اون چیزی نبود که میخواستم ولی خب، اگه اصلا میشه همه چیز همونی باشه که می خواهی. موافق نیستی؟ یک لحظه به نظر رسید کریان گیت شد بعد پسرش دایناسور را کف پیاده رو پرتاب کرد و دایناسور کنار غوطی له شده افتاد. آره، نورا دایناسور را برداشت. حالا که از نزدیک نگاهش میگرد، یک استگسور بود و بکریان داد. گریان با لبخندی قدردانیاش را نشان داد و بعد داخل خانه ای رفت که زمانی مال آقای بنرژی بود. پسرش بلا دوباره زد زیر گریه. نورا گفت، خود حافظ، آره خداافظ نورا به تفاوت زندگی ها فکر کرد چه چی چیزی باعث شده بود آقای بنرژی آن همه اصرار به ماندن در خانهاش را کنار بگذارد و به خانه سالمندان برود نورا تنها تفاوت میان این دو زندگی بود اما مگر چه فرقی داشت چه کار کرده بود سبد خرید آنلاین اش را انداخته بود چند بار نسخه های دارویش را از داروخانه گرفته بود خانم علم گفته بود هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچک رو نادیده نگیر همیشه باید این رو به یاد داشته باشی نورا به پنجرهی آپارتمان خودش خیره شد به خودش در زندگی اصلیش فکر کرد که در همان اتاق خواب جایی میان مرگ و زندگی گیر افتاده بود برای این بار جوری نگران خودش شد که گویی درباره‌ی شخصی غریبه فکر می‌کرد نه صرفا خودش در زندگی دیگری بلکه عملاً انسانی دیگر انگار که سرانجام پس از تجربه این همه زندگی به شخصیتی تبدیل شده بود که دلش برای خود سابقش میسوخت البته نه به آن شکل که برای خودش دل بسوزاند چون حالا دیگر عوض شده بود بعد کسی پشت پنجره‌ی آپارتمان نورا پدیدار شد زنی که او نبود و گربه‌ای در دست داشت که ولتر نبود استکم نورا امیدوار بود که اینطور باشد هرچند که دوباره احساس گیجی و مورمور مور می کرد. به سمت شهر را افتاد و در خیابان اصلی قدم زد. بله، حالا با گذشتش فرق می کرد. قوی تر شده بود. در اون خود چیزهایی دیده بود که قبلا حتی از وجودشان هم خبر نداشت. چیزهایی که به لطف تجربیاتی همچون آواز خواندن برای استادیومی پر از آدم فراری دادن خرس قطبی و احساس عشق و ترس و شجاعت به دست آورده بود. جلوه فروشگاه بوتس شلوغ شده بود. پولیس های یونیفورم پوش داشتن دو پسر را بازداشت می‌کردند. و کمی آن طرفتر پلیسی لباس شخصی با بی مش حرف می‌زد. نورا یکی از پسرها را شناخت و به سمتش رفت. لئو، یکی از پلیس‌ها به نورا اشاری کرد که جلو نیاید لئو پرسید. جنواری من! نورا متوجه شد که نمی بگوید معلم پیانوی تو. همچنین میدانست در چنین شرایطی به زبان آوردن هرکی که قصدش را داشت چقدر مسخره بود. اما در هر صورت آن را گفت. کلاس موسیقی میری؟ لعو در حالی که دستبند میخورد سرش را پایین انداخت. کلاس موسیقی کجا بوده؟ قدرت صدایش را از دست داده بود. مأمور پلیس حالا خسته به نظر میرسید. لطفا این قضیه را به ما بسپارین خانم؟ را به او گفت بچه خوبیه لطفا خیلی بهش سخت نگیرین خب این بچه خوب همین حالا اندازه دیویس پوند از اون مغازه دزدی کرده همچنین معلوم شده که سلاح داشته سلاح؟ یه چاقو نه حتما اشتباهی شده اصلا اینطور بچه ای نیست مامور پلیس به همکارش گفت شنیدی این خانوم فکر میکنه دوست عزیزمون لو تامسون، از اون بچه هایی نیست که خودشو توی درد سر مندزه. مامور دوم خندید. <تصفيق> این بچه همیشه یه پاش توی هلوفتونیه. معمور اولی گفت. خوب دیگه بهتره برین و بذارین کارمون بکنیم. نورا گفت. البته، البته، هر کاری که گفتن انجام بده لیو. لئو جوری نگاهش کرد که انگار فکر می کرد کسی او را برای مسخر بازی فرستاده تا این حرفها را بزند. چند سال پیش دورین مادر لئو به مغازه تئوری ریسمان آمد تا کیبورد ارزانی برای پسرش بخرد. نگران کارهای پسرش در مدرسه بود. پسرش هم نشانه از علاقه به موسیقی نشان داده بود. برای همین دورین میخواست او را به کلاس پیانو بفرستد. نورا برای او توضیح داد که پیانوی الکتریکی دارد و می‌تواند با آن بنوازد اما برای تدریس آموزش ندیده دوریان هم توضیح داد که خیلی پول ندارد اما در هر صورت با هم دیگر قرار و مداری گذاشتند و بدین ترتیب نورا عصر شنبه هایش را با اشتیاق صرف یاد دادن تفاوت میان آکورد هفتم مینور و ماژور به لئ می کرد و بدین ترتیب نرا عصر شنبه هایش را با اشتیاق صرف یاد دادن تفاوت میان آکورد هفتم مینور و ماژور به می میکرد و نظرش این بود که لئو پسر خیلی خوبی است و اشتیاق زیادی برای یادگیری دارد دوران متوجه شده بود که لئو با آدم های نادرستی میگردد اما وقتی یادگیری موسیقی را شروع کرد در بقیه چیزها هم دست و پایش را جمع کرد ناگهان مدتی بعد دیگر بحث کردن با معلمها را کنار گذاشت و با اشتیاق و اراده زیاد به یادگیری و تمرین آهنگ های شپن اسکالژاپلین فرانک اوشن جان لجند و رکس اورنج کانتی پرداخت. حرفی را به یاد آورد که خانم علم در یکی از نخستین ملاقات‌های نورا از کتابخانه نیمه شب زده بود. هر زندگی میلیون‌ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم ها بزرگ هستند و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه، نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه‌ای میشه. در این زندگی نورا در دانشگاه کمبریج کارشناسی ارشد خوانده با اش ازدواج کرده و بچه دار شده بود و برعکس چهار سال پیش در آن روزی که دورین و لئو به مغازه آمدند نورا آنجا نبود در این خط زمانی دورین هرگز نتوانسته بود معلم موسیقی ارزان قیمتی پیدا کند و به همین خاطر لئو به اندازه کافی درگیر موسیقی نشده بود تا بفهمد در آن مهارت دارد هرگز عصر سشنبه ها کنار نورا جلوی پیانوی الکتریکی ننشسته و استعداد از شکوفا نشده بود تا بعد به خانه برود و آهنگهای خودش را بسازد. نورا احساس ضعف می نه فقط احساس مور مور و گیجی بلکه حسی قوی گویی به عمق پوچی پرتاب می شود. همزمان یک لحظه دیدش تار شد. حسی که به او می گفت نورای دیگر آماده است تا به محض رفتن او جایش را بگیرد و مغزش با اشتیاق تمام حفره های داستانش را پر خواهد کرد تا دلیلی موجه برای این سفر یک روزه به بدفورد داشته باشد و حتی تمام لحظات فقدانش در این دنیا را ماستمالی کند. نورا نگران از معنای پشت این حس از لئو و دوستش رو برگرداند و اجازه داد زیر نگاه همه رهگذران خیابان اصلی شهر به طرف خودروهای پلیس برده شوند. نورا با قدمهایی سریعتر از قبل به طرف پارکینگ شهر براه افتاد. زندگی خوبیه. نگاهی نو به همه چیز در مسیر ایستگاه از کنار لکانتینا گذشت که چینش زیگزاگ مانند دکوراسیون شلوق قرمز و زردش حس سردردی میگرنی با حال و هوای مکزیک را به یاد او می آورده. گارسونی داخل رستوران بود که سندلی ها را از روی میزها پایین می گذاشت تئوری ریسمان هم بسته و کاغذی دست نوشته به در آن چسبانده شده بود افسوس که تئوری ریسمان دیگر قادر به ماندن در این ملک نیست به علت افزایش اجاره خیلی ساده دیگر دخل و خرج ما نمیخواند از تمام مشتریان وفادارمان متشکرم اشکالی نداره خودتون رو مقصر ندونین. میتونین راه خودتون رو برین خدا میدونه اگه شما نبودین ما چی میشدیم دقیقا همان متری که نورا با دیلن دیده بود طبق تاریخ نوشته شده با ماژیک و دستخط ریز نیل روی کاغذ، این نوشته تقریبا متعلق به سه ماه پیش بود. نورا احساس ناراحتی می کرد. چون تئوری ریسمان برای خیلی ها اهمیت زیادی داشت. با این حال زمانی که تئوری ریسمان با مشکل مواجه شده، نورا آن کار نمی خب، فکر کنم پیانوهای الکتریکی زیادی فروختم، چندتا گیتار خیلی خوب هم فروختم. جو و نورا در دوران نوجوانی مثل همه ی نوجوانها شوخی های بسیاری با شهرشان می کردند. و یکی از حرفهایشان هم این بود که زندان بدفورد در واقع زندان داخلی شهر است و بقیه شهر هم نقش زندان بیرونی را ایفا می کند. هر موقعیتی که برای فرار به دست آوردی باید از آن استفاده کنید. اما حالا در حالی که به ایستگاه نزدیک میشد، گویی خورشید برای نخستین بار بیرون آمده بود و نورا متوجه شد در تمام این سالها دید اشتباهی به شهر داشته. وقتی از کلار مجسمه جانهاوارد اصلاحگر زندانهای بدفورد در میدان سنت پاول گذشت و درختهای اطراف و پشت آن را زیر نور خورشید دید، به این فکر افتاد که شاید اصلا نخستین بار است که این چیزها را می بیند. آنچه نگاهش می کنی، اهمیتی ندارد. آن چیزی مهم است که می بینی. در مسیر بازگشت به کمبریج در امنیت و آرامش خودروی گران قیمتش که بوی نسبتاً ته و آور پلاستیک و دیگر مواد شیمیایی و مصنوعی را میداد در ترافیک سنگین خیابان رانندگی میکرد. از کنار ماشین ها همچون زندگی های فراموش شده میگذشت. عمیقا آرزو میکرد قبل از مرگ خانم علم واقعی توانسته بود او را ببیند. خوب میشد اگر قبل از درگذشته او یک دست دیگر با هم دیگر شطرنج بازی میکردند. بعد هم یاد لئو بیچاره افتاد که در سلول بی توی اداره پلیس بتفورد نشسته و منتظر دوریگن بود که بیاید دنبالش. نورا آرام گفت: این بهترین زندگیه. دیگر ناامید شده بود. این بهترین زندگیه. همینجا میمونم. انتخابم همین زندگیه. این بهترین زندگیه. اما میدانست که خیلی وقت ندارد. گلها آب دارند. یه خانه پارک کرد و داخل دوید. افلاتون با خوشحالی به استقبالش آمد. نورا ناامیدانه صدا زد. اش، مالی؟ باید آنها را میدید. میدانست که خیلی وقت ندارد. حس می کرد کتابخانه نیمه شب منتظرش است. اش، با لحنی شاد، از باغچه پشتی خانه جواب داد. بیرونیم؟ در نتیجه نورا خود را به حیات پشتی رساند و مالی را دید که زمین خوردن اخیرش از روی سه چرخه را فراموش کرده و دوباره سوارش شده بود. اش هم داشت به بوته گلی رسیدگی می کرده. سفر چطور بود؟ مالی از سه چرخش پیاده شد و به طرف نورا دوید. مامانی دلم برای تنگ شده بود. س... سه چرخه سواریم دیگه خیلی خوب شده. واقعا عزیزکم. دخترش را صفت در آغوش گرفت. چشمانش را بست و با نفسی عمیق بوی موی او و سگ و مایع نرم کننده لباس و رایحه کودکی را استشمام کرد. امیدوار بود شگفتی نهفته در این ترکیب او را آنجا نگه دارد. دوست دارم مالی، میخوام اینو بدونی تا عبد دوستت دارم. میفهمی چی میگم؟ آره مامانی، معلومه. باباییت رو هم دوست دارم. هر اتفاقی هم که بیفته همه چیز درست میشه چون تا ابد بابایی رو داری مامانی رو هم داری فقط ممکنه دقیقا مثل الان اینجا نباشم یعنی همینجا هستم ولی متوجه شد مالی فقط نیاز دارد یک چیز را بداند دوست دارم مالی نگران به نظر میرسی افلاتون رو یادت رفت خوب مسلما افلاتون رو هم دوست دارم اصلا مگه میشه افلاتون رو فراموش کرد؟ افلاتون خودش میدونه که دوستش دارم مگه نه افلاتون دوست دارم نورا سعی کرد به خودش مسلط بشود هر اتفاقی که بیفته مراقبه هم هستند و هم دیگر رو دوست دارن کنار هم و شاد خواهند بود سپس اش که دستگیش های باقبانی به دست داشت به سمتش آمد حالت خوبه نورا؟ رنگت پریده؟ چیزی شده؟ بعدا وسط میگم وقتی مالی خوابید باشه راسی هر لحظه ممکنه یه ماشین فروشگاه سیار بیاد پس اگه صدای کامیون شنیدی به هم بگو آره حتما باشه بعد مالی پرسید که میتواند تواند آباش را بیاورد یا نه و اش برایش توضیح داد که این اواخر باران زیادی باریده و لازم نیست به گلها آب بدهند چون آسمان حواسش با آنها بوده مشکلی براشون پیش نمیاد حالشون خوبه آب دارن کلماتش در ذهن نورا پیش کردند مشکلی براشون پیش نمیاد. حالشون خوبه. و بعد چیزی درباره این گفت که شب قرار است به سینما بروند و با پرستار بچه هم هماهنگ کرده اند. نورا با اینکه کاملا فراموش کرده بود، فقط لبخند زد و نهایت تلاشش را کرد که همانجا بماند. اما داشت اتفاق میافتاد. داشت اتفاق میافتاد و نورا این بار با زر ذره ورودش حس می کرد و هیچ کاری برای جلوگیری از آن از لستش بر نمی جایی برای ماندگار شدن وجود ندارد. نه! شکی وجود نداشت که اتفاق افتاده بود. دوباره به کتابخانه نیمه شب برگشته بود. خانم علم پشت کامپیوتر نشسته بود. لامپها در بازه های بالای سرشان سوسو می زدند و تکان تکان می خوردند و می لرزیدند. نورا! کافیه! آروم باش! دختر خوبی باش! باید این مشکل رفع کنم. ترک های متعدد با سرعتی غیر طبیعی روی سقف شکل می و پراکنده می‌شدند و گرد و خاک به شکل کم رنگ پایین می‌ریخت. صدای ناگهانی تخریب و فرو ریختن همه جا را پر کرده بود. اما نورا از شدت خش موفق شد آن را نادیده بگیرد. تو خانم علم نیستی، خانم علم مرده، منم مردم. قبلا دربارش حرف زدی، ولی حالا که دوباره اسمش آوردی باید بهت بگم که. فکر کنم بهزودی می میری چرا هنوز اونجا نیستم؟ چرا اونجا نیستم؟ میتونستم حس کنم که داره اتفاق می ولی نمیخواستم اینطوری بشه خودت گفتی اگه زندگی پیدا کنم که بخوام توش بمونم که واقعا بخوام توش بمونم همونجا میمونم گفتی این کتاب مسخره رو فراموش میکنم گفتی میتونم زندگی رو که میخوام پیدا کنم زندگی که میخواستم همون بود همون زندگی بود لحظاتی پیش نرا با عاش مالی و افلاتون در باخچه ای سرشار از زندگی و عشق بود و حالا در اینجا منو برگردون همونجا میدونی که نمیشه خب برگردونم به شبیه ترین زندگی بهش نزدیکترین زندگی ممکن به همون زندگی رو میخوام خواهش میکنم باید ممکن باشه، حتما زندگی هست که توش، با اش رفتم قهوه بخورم و بعد مالی رو به دنیا آوردیم و افلاتون آوردیم پیش خودمون و فقط، فقط یه چیز فرعی رو متفاوت انجام دادم، بنابراین عملا یه زندگی متفاوته. مثلا اینکه که یه قلدی متفاوت برای یفلتون خریدم یا یا یا مثلا نمیدونم به جای پیلاتس یوگا کار کردم یا رفتم یه دانشگاه دیگه به روز کمبریج یا اگه باید قبل از اون باشه به جای قهوه با اش چایی خوردم همون زندگی رو میخوام منو ببر به اون زندگی سود باش دیگه خواهش میکنم کمکم کن دوست دارم یکی از اون زندگی ها رو امتحان کنم خواهش میکنم دود از کامپیوتر بلند شد صفحه نمایش سیاه و بعد کل مانیتور تکه تکه و خرد شد خانم علم گویی شکست خورده باشد شلوول روی صندلی دفتریش افتاد و گفت درک نمی کنی خب مگه همیشه همینطور نبود یه هست را انتخاب میکنم یه کار آرزو میکنم. یه کار که آرزو می به شکل دیگه انجامش داده بودم و بعد کتاب رو برام پیدا می کنی من کتاب رو باز می و میرم توی همون زندگی. مگه عمل کرده کتاب همینطوری نبود؟ به این سادگی نیست. چرا؟ مشکلی توی نقل و انتقال پیش اومده؟ مثل همون اتفاقی که سری قبلی افتاد؟ خانم علم قمگینانه به اون نگاه کرد. مشکل بزرگتر از این حرفاست همیشه این احتمال وجود داشت که زندگی اصلیت به پایان برسه. بهت که گفتم نگفتم خودت میخواستی بمیری. شاید هم واقعا بمیری. آره اما این رو هم گفتی که فقط باید جایی برای رفتن پیدا کنم جایی برای موندگار شدن خودت گفتی یه زندگی دیگه دقیقا از همین کلمات استفاده کردی فقطم کافی بود که خیلی خوب فکر کنم و زندگی درست رو انتخاب کنم میدونم میدونم اما اینطوری نشد سقف کتابخانه داشت تکه تکه پایین میریخت انگار کچه به کار رفته در آن مثل خامه روی کی عروسی شلوول شده بود نورا متوجه اتفاقی حتی نگران کننده تر شد. یکی از لامپها ها پراند که روی کتابی فرود آمد و آن را به آتش گشید. خیلی زود آتش در تمام قفسه پخ شد و کتابها انگار که بنزین رویشان ریخته باشند تون تون آتش می گرفتند. مثل ای داغ و پرخروش از کهربای سوزان. سپس ای به سمت قفسهای دیگر پرتاب شد و آن یکی هم آتش گرفت. تقریبا همزمان با این اتفاق، تکه بزرگی از سقف جلوی پای نورا روی زمین افتاد. خانم علم داد زد، زیر میز، همین الان، زیر میز، همین الان. نورا خم شد و دنبال خانم علم چهار دست و پا زیر میز رفت و بعد مثل او روی زانوهایش نشست و سرش را پایین آورد. چرا نمیتونی جلوشو بگیری؟ دیگه یه واکنش زنجیری شده، اون جرقه ها تصادفی نیستن، همه ی کتاب ها نابود میشن، بعد هم ناچارن کل کتاب خراب میشه. چرا؟ درک نمی کنم، من که زندگی مورد نظرم رو پیدا کردم، تنها زندگی خوب، بهترین زندگی توی این کتاب خونه. خانم علم گفت، مشکل همینجاست. جاست. با نگرانی از کدار پایه چوبی میز، به آتش گرفتن قفصه های کتاب بیشتر و تکه های سنگ و گرد و خاکی که به زمین میریخت، نگاه کرد. اون زندگی هم برات کافی نبود. نگاه کن. به چی؟ به ساعتت. دیگه هر لحظه ممکنه وقتش برسه. لورا ساعتش را نگاه کرد. در ابتدا هیچ تغییری ندید. اما بعد اتفاقی که خانم علمی گفت رخ داد. ساعتش ناگهان دوباره مثل یک ساعت معمولی شروع به کار کرد. یک دقیقه نیمه شب. دو دقیقه نیمه شب. نورا پرسید چه اتفاقی داره میفته؟ همزمان فهمید که آن اتفاق هرچه که بود خوب نبود. زمان داره روند همیشتگیش رو تایی میکنه. ما چطوری باید از اینجا خارج بشیم؟ نه دقیقه نیمه شب. ده دقیقه نیم شب. خانم علم گفت، مایی وجود نداره. من نمیتونم کتاب رو ترک کنم. وقتی کتابخونه ناپدید بشه، من هم باهاش ناپدید میشم. اما این شانس هست که تو فرار کنی. هرچند که خیلی وقت نداری، کمتر از یه دقیقه. نورا اندکی پیش یک خانم علم را از دست داده بود و نمیخواست این یکی را هم از دست بدهد. خانم علم متوجه استراب او شد. گوش کن ببین چی میگم. من بخشی از کتاب خونم، اما کتاب خونم بخشی از توه، میفهمیشی میگم؟ تو به خاطر کتاب خونه وجود نداری، دقیقاً برعکسه کتاب خونه به خاطر تو وجود داره. یادت چی گفت؟ گفت این ساده ترین شکلیه که مغزت میتونه واقعیت عجیب و متغیر جهان رو برات ترجمه کنه. بنابراین اینه که میبینی، فقط تفسیر مغزت از یه چیز دیگه است، چیزی خاص و خطرناک. تا اینجا شو خودم فهمیدم اما یه چیزی مشخصه تو اون زندگی رو نمیخواستی بی ایب و نقص تر این زندگی بود واقعا هر لحظه حضور توش چنین احساسی داشتی؟ آره منظورم اینه که میخواستم چنین حسی داشته باشم آخه آشق مالی بودم میتونستم آشق عشق اش هم بشم اما فکر کنم شاید اون زندگی مال من نبود خودم اون رو نساخته بودم فقط وارد زندگی یه نورای دیگه شده بودم یه زندگی بی و نقص اما خودم نبودم پانزده دقیقه نیمه شب نورا گفت نمیخوام بمیرم صدایش ناگهان بالا رفته و همزمان شکننده شده بود تا عمق ورودش نمی خوام بمیرم خوام بمیرم خانم علم با چشم‌های گوشادی نگاهش کرد شعله یک فکر در چشمانش درخشید باید از اینجا فرار کنی نمیتونم کتابخونه از هر طرف تا ابد ادامه داره به محض اینکه واردش شدم ورودیش ناپدید شد پس باید دوباره پیداش کنی چطوری اصلا در نداره وقتی کتاب داری دیگه در میخوایی چیکار کتابا همشون دارن توی آتیش میسوزن یه کتاب نمیسوزه همون کتابی که باید پیداش کنی. کتاب حسرت ها؟ نزدیک بود خانم علم بزند زیر خنده نه اون آخرین کتابیه که در این شرایط به دردت میخوره تازه تا الان دیگه خاکستر شده اولین کتابی بوده که آتیش گرفته باید اون سمتی بری با انگشت به سمت چپ خودش اشاره کرد میان آشوب و آتش و تکه های سقف که پایین می یازدهمین ردیف از اون سمت. سومین طبقه از پایین. کل کتاب داره خراب میشه. بیست و یک دقیقه نیم شب. بیست و دو دقیقه نیمه شب. بیست و سه دقیقه نیمه شب. نمی فهمینو را چی رو؟ حالا همه چیز منطقی به نظر میرسه این دفعه نه به خاطر اینکه میخواستی بمیری، بلکه چون میخوای زنده بمونی به کتابخونه برگشتی دلیل فرو ریختن کتابخونه امین نیست که بخواد تو رو بکشه داره فرو میریزه تا شانس برگشتی به تو داده باشه بالاخره تصمیم مهمی گرفته شده تو تصمیم گرفتی که میخوای زنده بمونی حالا دیگه تا وقت داری برو زندگی کن اما تو چی چه بلایی سرت میاد خانم علم گفت نگران من نباش به هت قول میدم که هیچی حس نکنم بعد همان حرفی را زد که خانم علم در آن روز کذایی، وقتی نورا را پس از شنیدن خبر مرگ پدرش در آغوش گرفته بود به زبان آورد اوضاع بهتر میشه نورا همه چیز درست میشه خانم علم یک دستش را به سمت سطح میز برد و عجولانه دنبال چیزی گشت یک ثانیه بعد خود نویس پلاستیکی نارنجی رنگی را به نورا داد از همان نورا در دوران مدرسه داشت مدت ها پیش هم آن را در کتابخانه نیمه شب دیده بود لازمت میشه چرا این کتاب هنوز نوشته نشده تو باید شروعش کنی نورا خودنویس را گرفت خدا نگهدار خانم علم یک لحظه بعد تکیه بزرگی از سقف روی میز افتاد ابری از گچ و گرد و خاک دور تا دورشان را گرفت و راه جلویشان را بند آورد سی و چهار دقیقه نیمه شب، سی و پنج دقیقه نیمه شب، خانم علم با صرف گفت، <تصفيق> برو زندگی کن.